سلام عزیز میکنم خدمت شلوار دگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست هوی من خوش آمدید در این قسمت در خصوص محریه بعد از فوت شوهر صحبت می کنیم شخصی که در غیب حیات خودش محریر رو پرداخ نکرده باشه بعد از فوت اموالی که از ایشون باقی میمونه پاسخگوی این دین هست یعنی ما فرض میکنیم آقای احمد خانومش مریم هست و سه فرزند پسر هم دارد این آقای احمد هیچ بدهی به کسی هم ندارت و تنها دینش مهریه خانمیشون هست. خوب آقای احمد فوت میشود و اکنون میرسیم به وراس و بحث تقسیم ارس مطرح میشود. قبل از اینکه ارسی تقسیم بشود باید دین متوقف داده شود. در مثال ما تنها دین موجود مهریه است. پس پنوب این اگر شخصی فوت بشه باد مهری خانوم از بین نمیره باد فرض میکنیم در این مثال مهری خانوم مساوی میشه باد با همان خانه ای که بنام مرهم احمد آقا بودست کلین خانه باید به با خانم داده شه باد با بته مهریش خب در این صورت چیزی دیگر نمی‌ماند برای بقیه ورزش که بخوان تخصیم بکنند، خب چیزی نمی‌ماند. چون آنچه ما می‌ببردیم که کانون پرداخت دیونه متفاوت است. از انبالی که از اینشان باقی می‌ماند که نامش ما ترک است. پس اگر جایی شنیدیم ماترک یعنی اموال به جا مانده از متوفا پس در این مثال ما هیچ چیزی دیگری باقی نمیماند تا بین آن سپسر تقسیم شد البته که اگر مالی باقی میماند همسر احمد آقا یعنی مریم خانوم هم به اموان وارس سح میبرد در کنار آن سپسر اما در این مثال ما هیچ چیزی باقی نماند